به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان این دفعه دختر نارنج طلا یکی از مشخصه های قصه های عامیانه پایان خوش آنهاست به ندرت قصه‌ای یافت می‌شود که پایان غمانگیز داشته باشد یا قهرمان آن بمیرد در روایت دختر نارنج تلا قهرمان قصه از قصه دق می کند و می میرد. در طول این روایت نیز ناهم هایی به چشم می خورد و به نظر میرسد که روایت مخدوشی است. قصه ها علا ساده انگاری هایی که در آنها وجود دارد همه چیز را بی دلیل به خود راه نمیدهند. در روایت دختر نارنج طلا از فیروزنا می یاد می شود که قرار است دو دختر شبیه به هم را به قهرمان بشناساند اما در میان راهی که برای یافتن فیروز قهرمان قصه طی میکند شیری پدیدار می شود و هدف قهرمان را برآورده میسازد و وجود فیروز را منتفی میسازد و یا خواسته قهرمان قصه از شیر که باقی پر از گل و ریحان به او به نمایاند و همچنین پادشاهی که در انتظار دشمنان است به دور از محبر قصه است خلاصه روایت دختر نارنج طلا را می نویسیم و من شما را به شنیدن اون دعوت می کنم پادشاه سرزمین بلخ دختری داشت این دختر برای خاستگار شرط گذاشته بود که هر کس دختر نارنج طلا رو برای من بیاره من زن اون میشم مردای زیادی در پی یافتن دختر نارنج طلا رفتن و هرگز باز نگشتن تا اینکه روزی جوانی به نام فرج که از خاستگاران دختر پادشاه بلخ بود راه سرزمین دیوها رو در پیش گرفت تا دختر نارنج طلا رو به بیاره اون رفت و رفت تا قصر دختر نارنج طلا رو پیدا کرد دید سر مردایی که قبل از اون برای بردن دختر نارنج طلا اومده بودن بالای نیزه هاست فرج دیوهای نگهبان قصر رو کشت و راه افتاد تا به باقی رسید در گوشه ای از باغ تختی بود و روی اون نارنج طلا درخشید فرج نارنج رو برداشت و به شهر بلخ حرکت کرد و اونو به دختر پادشاه بلخ داد دختر سر نارنج طلا رو به آرومی برید دختری از توش بیرون اومد که با دختر پادشاه بلخ مونه میزد اونقدر دو دختر به هم شبیه بودن که تشخیص اونها از هم ممکن نبود فرج وقتی شنید که تنها یک نفر قادر به تشخیص دخترها هست و فیروز نام داره باروبونش رو بست و در پی فیروز به راه افتاد رفت و رفت تا ناگهان قرش شیری رو شنید نگاه کرد دید درختی توی شکم شیر فرو رفته شیر تا فرج رو دید گفت ای جوان منو از این گرفتاری رها کن تا هر حاجت و ای که داری رو برآورده کنم. فرج درخت رو برید و شیر رو نجات داد. شیر گفت بگو چی میخوای؟ فرج گفت تماشای باقی پر از گل و ریحان که در جویهای اون شیر تازه شیر سلطان جنگل توش روان باشه شیر فرج رو بر پشت خودش سوار کرد و راه افتاد رفت و رفت تا به نزدیک باغی رسید گفت چشماتو ببند و آرزو کن فرج چشمهاشو بز شیر مشتی به پهلوی فرج زد فرج چشاشو باز کرد و خودشو تو باقی دید که جویهای اون خشک بود شیر باز اونو پشت خودش سوار کرد و از باغ دور شد نرهی کشید همه شیرها به دورش جمع شدند و با هم راه افتادند در اطراف باغ پادشاهی زندگی می کرد که اون روز منتظر حمله دشمناش بود دختر پادشاه به بام قصد رفت و اطراف و نگاه کرد دید از دور سپاهی بزرگ میاد خبر به پدرش رسوند که دشمنا اومدن. به دستور پادشاه لشکریان از شهر بیرون رفتن. اونجا چشمشون افتاد به شیرها و برگشتند شیرها وارد باغ شدند و شیر خودشون رو توی اون ریختند و روان کردند و رفتند شیر از فرج پرسید دیگه چی میخوای فرج ماجرای دختر پادشاه بلخ و دختر نارنج طلا رو برای شیر تعریف کرد بعد گفت اگه تو بتونی اون دو رو از هم تشخیص بدی خوشحال میشم شیر فرج رو به پشت خودش سوار کرد و راه افتادن رفتن و رفتن تا به سرزمین بلخ رسیدن شیر پای هر دو دختر رو بو کرد بعد دست یکی از اونها رو گرفت و به فرج گفت این دختر نارنج طلاست اما تو با دختر شاه بلخ خروسی نکن چون اون تو رو به دردی مبتلا میکنه که اگر همه خزانه شاهی رو هم خرج کنی درمان نمیشی ولی وصلت با دختر نارنج طلا تو رو به هرچی که بخوای میرسونه فرج با دختر نارنج طلا عروسی کرد بعد از مدتی دختر نارنج طلا پسری به دنیا آورد که اسمش رو کاکلزری گذاشتن. گذشت تا اینکه دختر نارنج طلا دختری به دنیا آورد که اسمش رو دندون مروارید گذاشتن. این خواهر و برادر وقتی بزرگ شدن هر کدوم هنری داشتن. کاکلزری با انگشتاش سحر و جادوگری میکرد. و دندون مروارید میتونست به شکل پرندهی در بیاد روزگار گذشت تا اینکه روزی فرج به سفر رفت و در بین راه اسیر دشمناش شد فرج تاری از گیسوی دندون مروارید هم بود اونو تو آتیش انداخت دختر به شکلی کبوتری در اومد و خودش رو به پدرش رسوند و اونو از بند رها کرد وقتی برگشتن، دیدن کاکلزری بیمار شده. دندون مروارید، رفت دنبال کسی که بتونه برادرش رو سالم کنه. به پیرزنی رسید. اونو به بالین برادرش برد. پیرزن وقتی کاکلزری رو دید گفت باید به چشم ساری که از اینجا خیلی دوره برید و ماهی قرمزی که در اونجا هست و بگیرید بپزید و به کاکل ذری بدید بخوره تا خوب شه چشم سار در سرزمین دیوها بود وقتی فرج و دندون مرواری به راهنمایی پیرزنی که وسط راه دیده بودن به اونجا رسیدن دیوها یک به یک برای جنگیدن با اونها به میدون اومدن دندون مروارید پدرش رو برهنه کرد و بر تن اون روغن مخصوصی مالید هیچ کدوم از دیوها نتونستن به فرج دست پیدا کنن اونا ترسیدند و تسلیم شدند. فرج و دندون مروارید ماهی رو سید کردند و به خونه برگشتند کاکلزری با خوردن ماهی قرمز حالش خوب شد روزی دختر نارنج طلا، به فرج گفت دلم برای دختر پادشاه بلخ تنگ شده همه راه افتادن تا به سرزمین بلخ رسیدم در اونجا دختر نارنج طلا و دختر پادشاه بلخ همدیگر را در آغوش گرفتند اون دو جوهاشون رو با هم عوض کردند بعد از مدتی دختر شاه بلخ به اون که کسی بفهمه همراه با فرج و بچه هاش به طرف سرزمین دختر نارنج طلا راه افتادند به اونجا که رسیدن نه از باغ اثری بود و نه از قصری که داشتن. فرج فهمید که چی پیش اومده. دخ کرد و مرد. دختر نارنج تلا سمندر چلگیس صفحه 105 محسن میهن از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر چاپ اول 1352 شنوندگان عزیزم امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و در داستان بعدی هم منو همراهی کنید همه شما رو به خدای بزرگ می سفرم. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را می زفر کنیم، جایی که پری و کتوله ها زندگی می کانال هزار افزان همون یک دنبالش یک دنبال. جایی که داستان های و ای اصطوره ای سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افزان سفری به دنیای خیال و رویه سفری